از تمنای جمالت آسل کامم هنوز بر ای حبیب و غص آشامم هنوز ای حبیب کبریا و بهترین انبیه جاملال خود بنوشان کیم تمنایم هنوز جاملال خود بنوشان کیم تمنایم هنوز از تمنای جمالت آسل کامم هنوز من آمد ای حبیب غص آشامم هنود، ای حبیب کبریه و بیترین انبیا جاملال خود بنو شنکین تمنایم هنود جاملال خود بنو شنکین تمنایم هنود ای رسول لم یزل باز روز ازل تیره در بغل خوردم نیارامم هنوز صاحب مراج استی فخر کننم تویی ختم مرسل بر تو آمد مده تو خانم هنوز ختم مرسل بر تو آمد مده تو خانم هنوز از دمنای جمالت آسل کامم هنوز بر نیامد ای حبیب و غص آشامم هنوز اے حبیب کبریٰ و بدانی نے ام بیا جاملال خود بنوش کہ تمنا خود بی هنوز سرم سازم خاک گوی بیایم بر درت دش بسقانے حنا بس, بس طلبہ با من هنوز سر و سر سلامت ما بر روح آن حبیب هر صبح و ہر این است هنوز. هر صبح و هر است ناز داردم هنوز است من نای جمالت آسلی کام هنوز بل نیامدهی هبی با غص آشم هنوز هبی بکبریا و بدری ن انبیا جام لال خود بنوشان کی تمننم هموت جام لال خود بنوشان کی تمننم هموت ای شایخوا صلی علیکا اي ما اي تابا عليك ذات شريفة تسل جهانات غد لتيفا سرو جناناس غد لتيفا سرو جناناس اي شائقوبان صل عليك اي ما اي تابا عليك ذات شريفة اصل جهانا بددلیف صلب جنان است قددلیف سر جنان است نفسه جان است خلغه عزیمت توانیان است با خاص و آمد والله کلام است شیرین کلام است والله کلام شیرین کلام است. اي شايخ وبان صل عليك اي ماهتابان صل عليك ذات شريفا أصل جهانات است قد لطيف صدر جنانا قد لطیفه سالم جنانم نامت نامیس اس کان فیزه اماس جامیس مت کان وسنت امات بر عاشغانا دوزخ حرام است ایشان جنت دوام است ایشان جنت دوام است بان أيها الطبان صل عليك ذات شريفات أسل جهانات قد لطيفة سر جنانات. ما دلتی سر سرن زنان رو یچ روئی سسی ده جانا دو یچ بوئی ساتره جہاناس مشتاق رو یت بی خانه ماناس کو یچ مشتاق رو بی خانه مانست. مشتاق بی خالی ماند، اشای خوبان صلّا علیک، اباعت آبان صلّا علیک، شریف است، جهان است، غدّ سر جنان است سر ای شاع خوبان صلی علی ای ذات شریف تسل جہان اس غدلتیفا سروج نان اس غدلتیفا سروج نان اس غدلتیفا سروج نان غد